جوه طلبی کار برجسته موفقیت دنیا اینها رو به عنوان ارزش اعلام میکنه. اما یا اینها ارزشهای واقعی هستند سلام و به دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. خوشحالیم که امروز تصمیم گرفتید در درس دیگری از کلام خدا با ما همراه باشید چطور باید خودتون رو ارزیابی بکنید پولوس رسول تعالیم واضحی در نامه اولش به تیموتاوس به ما میده و معلم ما امروز اونا رو با ما درمیون میذاره. با هم به اون گوش میکنیم تا تفاوت بین موفقیت و رضایت رو یاد بگیریم. به کلاس دیگری از دانشکده ی کوچک کتاب مقدس خوش آمدیم. در جلسه امروز ما نامه اول پولوس به تیموتاوس رو بررسی میکنیم. نامه های پولس به تیموتائوس و نامه او به تیتوس به نامه های شبانی پولس معروف هستند. چون این نامه ها خطاب به شبانانی نوشته شدهاند و به این شبانان میگن که چگونه کلیسای افسوس و کلیسای کرت رو اداره کنند. در این جلسه ما اولین نامه پولوس پولس به تیموتائوس رو تمام خواهیم کرد. پولس در نامه اولش به تیموتائوس میگه که شبانان و یا رهبرانی که در کلیسا کار می کنند باید بابت کارشون دستمزد بگیرند. و باید از کارشون قدردانی بشه، مخصوصاً اونهایی که هم برای معزه و هم برای تعلیم کار میکنن. زیرا کتاب مقدس میفرماید دهان گابی را که خرمن میکوبد نبند و کارگر مستحق مزد خود میباشه. هیچ ادعایی علیه یکی از رهبران را نپذیر مگران که به وسیل دو یا سه شاهد تعیید شود. آنانی را که در گناه پافشاری میکنن در حضور همه توبیخ کن تا دیگران عبرت بگیرند در حضور خدا و عیسی مسیح و فرشتگان برگزیده تو را موظف می سازم که دستورهای فوق را بدون قرض نگاه داشته و هیچ کاری را از روی تبعیض انجام ندهی. در دستگزاری کسی برای خدمت خداوند جله نکن و در گناهان دیگران شریک نباش. خود را پاک نگاه دار و از این پس فقط آب ننوش بلکه کمی هم شراب بخور تا شکم تو را تقویت کند زیرا اغلب مریض حال هستی. برخی از مردم و حتی بعضی از کشیشان زندگی گناهالودی دارند و همه از آن مطلع هستند. در این مورد باید اقدام شدیدی به عمل آوری. اما در مورد کسانی که گناهانشان آشکار نیست، باید منتظر روز داوری شد تا حقایق آشکار گردد. به همون ترتیب هر کسی میدونه که هر شبان یا رهبری چقدر کار خوب انجام میده. اما گاهی کارهای خوب اونها تا مدت‌های طولانی مشخص نمیشه. اینها انواع چیزهایی هستند که پولوس در رسالات شبانی خودش یا اول تیموتاوس برای تی می نویسه وقتی که پولوس به تی این نصیحت رو میکنه به او میگه که کمی شراب هم به خاطر شکمش بخوره پولس تی رو موظف می کنه که گناه نکنه و به او میگه وقتی به تو گفتم که گناه نکنی منظورم این نبود که به کلی شراب رو رها کنی بلکه کمی هم شراب بخور تا شکم را تقویت کند زیرا اغلب مریض حال هستی من شبان خوبی رو در آتن به نام تانوس کاربونوس می که وس زمان ما هست او کلیسای بزرگی در آتن داره و بیش از هفتاد و پنج کلیسای وابسته به آن در سراسر یونان داره وقتی یک هفته نزد او بودم ملاحظه کردم که تانوس مقدار زیادی شراب می نوشه در فرهنگ یونانی خوردن شراب چیز پذیرفته شده ای هست همونطور که ما آب میخوریم اونها به جای آب شراب می خورن. تانوس یک شبان امریکایی داشت که به دیدن او اومده بود و بیش از حد به شراب خوردن او اهمیت میداد فکر میکنم که او دید که چشم‌های من داره رفته رفته بزرگ و بزرگتر میشه. اواخر هفته تانوس از من پرسید: آیا شراب خوردن من تو رو ناراحت میکنه برادر؟ آیا این سنگ لغزشی برای تو هست؟ من جواب دادم نه تانوس. چون پولوس به تیموتائوس گفته کمی شراب بخورد. البته او یونانی ها رو خوب می‌شناخت چون خودشم یونانی بود. از این رو جواب داد: میدونی چون تیموتائوس مریض بود اینو بهش گفته. اگر او مریض نبود حتما پولوس به او میگفت مقدار زیادی شراب بخور از نظر تانوس کاربونوس خوردن شراب در فرهنگ او اشکالی نداشت اما این متن در اول تیموتائوس پنج درباره رهبری بسیار بسیار مهم هست. چون که اون بر معیارهای بالای رهبری تاکید داره و این واقعیت که رهبران باید اون معیارها رو رعایت بکنن از اونجایی که وظایف رهبران عمومی هست باید با گناه آنان نیز در ملع عام برخورد بشه پولس هم اینطور نصایح عملی درباره بردگان به متوس میده. پولس به قلامان میگه آن دسته از مسیحیان این که قلام هستند باید برای ارباب خود خوب کار کنند و به او احترام بذارند تا نگویند که مسیحیان کارکنان خوبی نیستند. او میگه نگذارید از این راه نام خدا و تعالیم مسیحی مورد اهانت قرار گیرد. بعد پولس به متوس میگه که به قلامان تعلیم بده تا اربابان خودشون را طوری خدمت کنند که گویی خود خداوندیسای مسیح رو خدمت می کنند. در حالی که آیاتی مثل این در افسوسیان و کولوسیان هم وجود داره که میگه غلامان باید غلامان خوبی باشند و اربابان خودشون رو چنان خدمت کنن که گویی خداوند رو خدمت میکنن با این حال وقتی رساله فلیمون رو بررسی می میکنیم میفهمیم که تاکید نامه بر این هست که وقتی غلام ایمان میاره و تبدیل میشه دیگه نمیشه او رو به عنوان غلام حساب کرد بلکه باید با او مثل یک برادر رفتار کنید. با به کار گرفتن این متنها در عصر امروزی، پولس همه کارمندان مسیحی رو به چالش میکشه که از رئیسشون چنان اطاعت کنند و او رو چنان خدمت کنند که گویی به خداوند مسیح خدمت می‌کنند. جالبه که بدونید موزل اجتماعی بردگی در اون زمان وجود داشته و معلوم هست که پولس واقع واقع‌گرا بوده که بدون بردگی به این زودیها از بین نخواهد رفت. بسیاری از ایمانداران اولیه برده بودند. وقتی اونها ایمان آوردن از بردگی در این دنیا آزاد نشدند. به این دلیل پولس تعالی آلمی میده که به اونها نشون بده چطور از عهده بردگی خودشون بر بیان. در باب شش اول تیموتاوس متنی دارید در رابطه با خداشناسی و ثروت. پولس به تیموتاوس هشدار میده که ادعی بر این باورند که ثروت خداشناسی هست. ما میتونیم یک جلسه کامل رو به این متن اختصاص بدیم. تأکیدی در فرهنگ ما هست که به ثروت ارزش بزرگی قائله. از روزی که بچه به مدرسه میره، به او یاد داده میشه که ارزشش رو بر مبنای کامیابی قرار بده. از زمانی که او به مدرسه میره، موفقیت او قبول شدن در امتحانات هست. موفقیت او با ای سنجیده میشه که او چقدر از دیگر همکلاسی‌هاش موفق تر بوده. وقتی از مدرسه فارغ و تحصیل میشه، به او ای داده میشه بر مبنای اینکه چقدر موفق بوده. او ممکنه با درجه عالی فارغ التحصیل بشه چون معدل بالایی داره و یا شاید با درجه معمولی فارغ التحصیل بشه و یا شاید هم نتونه فارغ التحصیل بشه وقتی کوچکترین پسر ما کلاس دهم ده میرفت من و همسرم با مدیر او جلسه داشتیم پسر ما به خاطر جراحی ارتوپدی هشت هفته به مدرسه نرفته بود به خاطر کلاس هایی که از دست داده بود پسرمون در زمین شناسی رد شد او تقریبا از کار افتاده بود و ما نگرانش بودیم او دوباره امتحان داد و نتیجهش خیلی خوب شد اما وقتی او شبها ها بیخوابی میکشید و خیلی نگران بود با مدیرش جلسه ای ترتیب دادیم به ما گفته شد که بچه شما به نوعی احساس میکنه که ارزش او بر مبنای موفقیتش هست شما باید او را قانع کنید که ارزش او بر مبنای توانایی ها و موفقیت او نیست من به مدیر گفتم شما فکر میکنید بچه من این احساس را از کجا آورده که ارزش او بر مبنای موفقیتش هست شما فکر نمی‌کنید که از روز اولی که بچه من به مدرسه شما اومد، شما این حس رو به او دادی؟ من مردان بزرگی رو در دنیای حرفه و تجارت دیدم که هنوز با این مسئله درگیر هستند که آیا ارزش اونها بر مبنای توانایی و موفقیتشون هست؟ وقتی اونها تصادفی رو پشت سر می‌ذارن و یا حادثه ای براشون پیش میاد و نمی‌تونن موفق باشن، چیکار می‌کنن؟ آیا به خاطر اینکه نمیتونن دیگه موفق باشن ارزششون را از دست میدن یه بار شنیدم که واعظ معروفی داستانی تعریف میکرد او شبانی در ادینبرگ اسکاتلند بود او یکی از شبانان برجسه اروپا بود دکتر آلن ردپد وقتی یک روز یکشنبه در حال موعظه بود دستش شروع به حرکات ناگهانی کرد و ورقه ای که او روش یادداشتهایی نوشته بود به طور غیر ارادی از دستش افتاد او متوجه شد که مشکلی شریانی داره و خونریزی مغزی داره. به مدت سه ماه دکتر ردپت مشکل دوبینی پیدا کرد. او نمی‌تونه صحبت کنه و حرکت کنه، اما بالاخره او از این سکته نجات پیدا کرد. او میگفت که خدا چطور از اون تجربه در زندگی و خدمت او استفاده کرده. وقتی که در مورد این تجربه با ما خادمین صحبت میکرد، از ما پرسید اگر خدا شما را از هر کاری که میتونید انجام بدید ناتوان بکنه، آیا ارزش شما را از شما گرفته؟ آیا ارزش شما بر اساس کاری که میتونید انجام بدید یا بر اساس موفقیت‌های شماست پولس به می مینویسه کسانی هستند که دین برای آنان وسیله ای هست برای ثروتمند شدن و بس پولس با چنین اشخاصی برخورد میکنه و میگه از این گونه اشخاص دوری کن و برخلاف اونها میگه اما ثروتمند واقعی کسی هست که در زندگی خدا پسندانه خود به آنچه دارد قانع و خرسند است افراد زیادی هستند که به شما میگن که اونها با درجه عالی فارغ التحصیل شدند، وارد حرفه ای شدن و در اون شغل به بهترین مقام رسیدن اما رضایت واقعی رو پیدا نکردند، آرامش پیدا نکردند، از حرفه خودشون علی رغم داشتن موفقیت، رضایت و کامیابی و شادی پیدا نکردند. مردم به شما میگن که اونها ثروتمند شدن قدرت به دست آوردن در انواع چیزها موفق بودند، اما با اون موفقیت به شادی دست پیدا نکردند من فکر می چنین افرادی آماده اند که چنین چیزی بشنوند ثروتمند واقعی کسی هست که در زندگی خداپسندانه خود به آنچه دارد قانه و خورسند است پولوس در ادامه مطالبی در رابطه با مادی گرایی به ما میگه ما چیزی با خود به این دنیا نیاورده ایم و چیزی نیز نخواهیم برد پس اگر خوراک و پوشاک کافی داریم باید راضی باشیم حتی اگر ثروتی هم نداشته باشیم آیا این العاده نیست چی لازم هست تا شما قانه بشید موسسات رفاهی میگن غذا پوشاک و سرپناه پولس حتی به سرپناه هم اشاره نمیکنه اگر غذا برای خوردن نداشته باشید خواهید مرد اگر لباس برای پوشیدن نداشته باشید پلیس شما رو دستگیر میکنه به نظر میرسه این جایی هست که پولس مرزی تعیین میکنه اگر شما چیزی برای خوردن و پوشیدن دارید به تیموتاس میگه قانع باش باید با قضا و پوشاک قانع باشید چون آنانی که به دنبال ثروت اندوزی دیر یا زود دست به کارهای نادرست می‌زنند این کارها به خود ایشان صدمه زده فکرشان را فاسد می‌کند و سرانجام ایشان را راهی جهنم خواهد ساخت عشق به ثروت نخستین قدم به سوی سایر گناهان هست. بعضی حتی برای پول از خدا روی گردان شده و خود را گرفتار انواع دردها کردند ای تیموتاوس تو مرد خدایی از این اعمال زشت بگریز و راستی و تقوا را پیشه خود ساز به خدا اعتماد کن انسان‌ها را محبت نما صبور و مهربان باش آیا این نصیحت جالبی نیست که پولس شبان ارشد به شبان جوان تیموتاوس انتقال میده پولس می‌خواد تیموتاوس حس کنه تمام این چیزهای مادی که مردم معتقدند رضایت میاره هرگز رضایتی به بار نمیاره برخی ها معتقدند که کسانی هستند که دین برای آنان ای است برای ثروتمند شدن و بس از همه اونها بگریز تحت تاثیر چیزهایی که مردم دنبالش میرن قرار نگید چون اونها فکر میکنند که این چیزها براشون رضایت میاره کاری که باید بکنی اینه که باید به حیات ابدی بچسبی و میتونی به این طریق این کار رو انجام بدی راه رسیدن به حیات ابدی با پارسایی، خداشناسی، ایمان، محبت، پایداری و ملایمت هست. کولث بعد نصیحتی به تیموتائوس میکنه که باید توسط تیم و تاوس به ثروتمندان انتقال داده بشه به کسانی که در این دنیا ثروتی دارند بگو که مغرور نشوند و به آن امید نبندند چون دیر یا زود از بین خواهد رفت بلکه به خدا امید ببندند که هرچه لازم داریم سخاوتمندانه به ما عطا میکند تا از آنها لذت ببریم به ایشان بگو دارایی خود را رو در راه خیر صرف کنند و در نیکوکاری ثروتمند باشند با شادی به محتاجان کمک کنند و همیشه آماده باشند تا از ثروتی که خدا به ایشان عطا کرده به دیگران نفعی برسانند. با این اعمال نیک ایشان گنجی واقعی برای خود در آسمان ذخیره می کنن. این مطمئن ترین سرمایه گذاری برای به دست آوردن زندگی جاودانی است. از این گذشته زندگی پرسمری نیز در این دنیا خواهند داشت. کتاب مقدس نمیگه که ثروتمند شدن گناه یا اشتباهه. بسیاری از مردم ثروتمند هستند فقط به این دلیل که مسئولیت ثروت زیادی از طریق ارثیه به اونها واگذار شده. به ارس بردن ثروت زیاد گناه نیست. موفقیت و ثروتمند شدن گناه و خطا نیست. برای یک مسیحی ثروتمند شدن فساد نیست. بسیاری از مردان خداشناس در کتاب مقدس خیلی ثروتمند بودند. ابراهیم، ایوب و داوود رو به خاطر بیارید اما چیزی که مهم هست انگیزه پشت ثروت‌اندوزی و نحوه رفتار با ثروت هست. آیا شما ثروت رو تصاحب می‌کنید یا ثروت شما را تصاحب می‌کند وقتی تیموتائوس می‌فهمه که خود او باید از پول دوستی فرار کنه می‌فهمه که این طرز تفکری هست که باید به ثروتمندان انتقال بده پولس به تیموتاوس مرد خدا میگه پولس به او یادآوری میکنه که او فرا خوانده شده تا شبان بشه وقتی تیموتاوس این رو می‌فهمه برای ثروتمندان موعظه می‌کنه که باید در اعمال نیکو سروتمند و پولشون رو صرف کارهای نیک بکنن. اونها باید همیشه با شادی به نیازمندان کمک کنن. پولس این نوع بخشش رو تنها سرمایه مطمئن برای ابدیت میدونه. در این نامه اول تیموتاوس، آخرین سخنان پولس به تیموتاوس اینها هستند ای تیموتاوس، آنچه که به تو امانت سپرده شده حفظ کن. خود را درگیر بحثهای بیهوده نکن. به خصوص با کسانی که دم از علم و دانش میزنند اینها دروغ میگویند و دانشی ندارند چون سخنانشان باطل و بر ضد خداست بعضی از این قبیل افراد در اثر همین بحثها ایمانشان را از دست دادن فیض خداوند با تو باد من معتقدم که این چالشی مشخص هست در سراسر دنیا مراکز ورزشی و بدنسازی در حال پیشرفت هستند اما پولس تیموتائوس و ما را تشویق میکنه که ما در خداشناسی ورزیده بشیم. چون خداشناسی نه تنها در این زندگی به نفع ما هست بلکه در زندگی ابدی نیز به نفع ما خواهد بود. آیا شما تمریناتی می‌کنید که خداشناسی رو در زندگیتون بنا کنید؟ آیا شما به دنبال ثروت هستید یا به دنبال خداشناسی؟ این چیزیه که باید روش فکر کرد. حالا بذارید این دو مرد تیموتاوس و تیتوس رو با هم مقایسه کنیم. نمایی که از تیموتاوس داریم اینه که او شبانی جوان، حساس، مهربان، دلسوز دقیق اما به نحوی ترسو هست. تیتوس به نظر میرسه که شبانی مسنتر، بالغتر و مقاومتر هست. تیتوس احتمالاً بهترین شبانی بوده که پولس داشته و میتونسته برای حل انواع مشکلات و ارائه راحلهای خداشناسانه از او استفاده کنه. پولس تیموتاوس رو در افسوس قرار داد اما تیتوس رو در کرت قرار داد. قبلا گفتیم که کرت مکانی پر از مشکلات بود و تأسیس کلیسا در اون منطقه. کار بسیار دشواری بود این دو نامه اول تیموتاوس و تیتوس رو میتونیم هم نزیر شبانی بدونیم چون که محتویات اونها کاملا مشابه هستند و هر دو به موضوعات مشابهی در اداره کلیسا می‌پردازند در بسیاری از فرقه‌های مسیحی امروزی هر خادم این کتاب راهنمای مخصوص اون فرقه رو داره کتاب راهنمای خادم نحوه عملکرد خادم رو در خدمتش بر اساس اعتقادات اون فرقه تعیین میکنه به خادم نشون میده که چطور مردم رو عقد کنه، چطور مراسم تدفین رو به بیاره و چطور مردم رو تعمید بده و هر وظیفه دیگری رو در کلیسا چگونه به بیاره؟ هر دوی این نامه های شبانی رو میشود کتاب راهنمای خادمین دانست. نامه پولس به تیتوس بسیار شبیه نامه اولش به تیموتاوس هست، به جز اینکه فاقد احساسات شخصی هست. به نظر میرسه که اونقدر که پولس با رابطه شخصی داشته. با تیتوس رابطه نداره اگرچه اونها روابط سمیمانه ای داشتن تیتوس احتمالاً بهترین گزینه او برای شرایط دشوار بود تاکید نامه پولس به تیتوس این بود که دیدگاه خدایی به معنی داشتن ناظرانی خداشناس هست در نامه پولس به تیتوس به نظر میرسه که پولس میگه تنها راهی که تو میتونی در کرد کلیسا احداث کنی اینه که مباشران خداشناسی داشته باشی که نظریه خدا رو با زندگی های مقدسشون نشون بدن این موضوع نامه پولس به تیتوس در کتاب راهنمای خدمتی هست من به مشکلات ماموریتی که پولس به تیتوس داده دقت کردم به خاطر این ماموریت‌های مشکل که به تیتوس داده شده ما به این نتیجه می‌رسیم که تیتوس احتمالا شبانی مقاوم و بالغ بوده که مذاکره کننده خوبی هم بوده کسی بوده که در شرایط سخت میونجیگری کنه در باب یک آیه پنج پولس به تیتوس میگه بدین جهت تو را در کرت واگذاشتم تا آنچه را که باقی مانده است اصلاح نمایی و چنان که من به تو امر نمودم کشیشان در هر شهر مقرر کنی حلال مشکلات پولس تیتوس مأمور شده بود چیزهایی رو که در کلیسا بی تأثیر شده بود ترمیم کنه مشکلاتی در قرنتس بود، به این جهت تیتوس رو به قرنتس فرستادند و حالا مشکلاتی در کرت به وجود می‌دهد و او رو به کرت فرستادند در باب یک حیات ده تا دوازده شما متوجه میشید مشکلاتی که باید در کلیسای کرت اصلاح می شده در وهله اول همان مشکلاتی بوده که پولس در بسیاری از جاها مثل گلاطیه داشته کل خانواده کلیسایی از فیض خدا برگشته بودند چون یهودیانی وارد کلیسا شده و به اونها تعلیم داده بودند که باید شریعت موسی را حفظ کنند به عبارتی باید ختنه شوند تا نجات پیدا کنند ایده در کرت بودند که تعلیم میدادند چون می‌خواستند شخصاً از شاگردان مسیح در کرد بهرهبرداری کنند اینها بخشی از مشکلاتی بودند که پولس قصد داشت توسط تیتوس ترمیم کند از اونجایی که بیشتر قسمت‌های نامه تیتوس شبیه اول تیموتائوس است لازم نیست که اون ها رو تکرار کنیم از جمله معیار‌هایی که برای انتخاب رهبران هست و در نامه تیتوس هم تکرار شده من اون ها رو تکرار نمی کنم اما فقط به بعضی از متن‌های نامه تیتوس اشاره می‌کنم که به عنوان نصایح و تشویقهایی برای او نوشته شده‌اند. مثلا پولس به تیتوس میگه کسی که دلش پاک است همه چیز را خوب و پاک می‌بیند. اما کسی که دل سیاهی دارد و بی‌ایمان است همه چیز را ناپاک و بد می‌بیند چون همه چیز را از دریچه افکار ناپاک و وجدان و آلوده خود می‌بیند. این گونه انسان‌ها ادعا کنند که خدا را میشناسند، اما اعمالشان ثابت میکند که دروغ میگویند. ایشان چنان سرکش و منحرف هستند که قادر به انجام هیچ کار خوبی نمیباشد. این لحن تندی هست و پولوس به تیموتائوس میگه هر کسی هر چیزی را از دریچه نگاه خودش میبینه کسانی که پاک هستند همه چیز رو پاک میبینند اما کسی که قلبی ناپاک داره همه چیز در نظر اون ناپاک است پیام زیبای نامه پولوس به تیتوس در این متن نهفته است در باب دو آیه یازده تا پانزده شما متنی دارید که چکیده ی چیزی رو که پولس میخواد به تیتوس بگه میتونید در اون ببینید پولس مینویسه هدیه رایگان خدا که همانا نجات واقعی است اکنون در دسترس همه مردم قرار دارد با پذیرفتن این هدیه الهی متوجه میشویم که خواست خدا از ما این است که از زندگی بیبندوبار و, و خوشگذرانی‌های گناهالو دست بکشیم و زندگی پاک و خدا خداپسندانی ای در این دنیا داشته باشیم اگر چنین زندگی کنیم می توانیم با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی باشیم که در آن خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد شد او جان خود را در راه گناهان ما فدا کرد تا ما را از آن وضع گناه آلودمان آزاد سازد و از ما قومی خاص برای خود به وجود آورد قومی که دلی پاک داشته مشتاق خدمت به مردم باشند این حقایق را تعلیم ده و مؤمنین را به انجام آنها تشویق کن هرگاه لازم دیدی با قدرت و اختیار کامل ایشان را توبیخ و اصلاح نما اجازه نده کسی سخنان تو را بی‌اهمیت انگارد آیا تا حالا نام کلیسای اپیفانی را شنیدید من کلیساهایی را با این نام دیدم کلمه اپیفانی در زبان یونانی به معنی ظاهر هست به لحاظی کلیسایی که توسط پولس در این نامه‌های شبانی به صورت نمودار ترسیم شده با نام کلیسای دو اپیفانی قید شده در این متن پولس درباره دو جلوه صحبت میکنه و به ما میگه که کلیسا طراحی شده که بین این دو جلوه وجود داشته باشه پولس مینویسه هدیه رایگان خدا که همانا نجات واقعی هست اکنون در دسترس همه مردم قرار دارد وقتی که پولس اون کلمات رو مینویسه او در مورد ظاهر شدن عیسی مسیح در نخستین ورودش به زمین با ما صحبت می کنه. وقتی که عیسی مسیح در بیت لحم به دنیا اومد، ما به اون جسم پوشیدن خدا میگیم خدا جسم پوشید و همه مردمان توانستن نجات خدا را از زندگی عیسی مسیح در طی سی سال زندگیش بر روی زمین ببینن. پولس به این ظهور یا تجلی خدا میگه گه. بعضی ها این رو اینگونه تبیر می کنن. خدا ظاهر شد. خدا تاریخ بشر رو با ظهورش در روی زمین به دو قسمت تقسیم کرد. پولس به ما میگه که فیض خدا ظاهر شده و به ما تعلیم میده که در این دنیای فعلی باید خداشناسانه و پاک و با عدالت زندگی کنیم. چرا که ما منتظر ظهور دیگری از خدا هستیم. وقتی عیسی مسیح در بازگشت ثانویه میگرده، ما منتظر جلوه باشکوه خدا هستیم. پس به این دلیلی که بهترین نام برای یک کلیسا میتونه این نام باشه کلیسای دو ظهور یا کلیسای دو جلوه چون که کلیسا طراحی شده تا در بین این دو ظهور وجود داشته باشه فیض خدا که نجات رو برای ما به ارمغان آورد زمانی ظاهر شد که عیسی مسیح آمد این ظهور اولیه بود در عهد جدید 318 بار گفته شده که خدا یک بار دیگر توسط عیسی مسیح ظاهر خواهد شد عیسی مسیح دوباره برمیگرده کلیسا طراحی شده که در فاصله بین این دو ظهور وجود داشته باشه فیض خدا که وقتی نجات آمد ظاهر شد و جلبه خدا که یک بار دیگر وقتی عیسی مسیح برمیگرده ظاهر خواهد شد خدا دقیقا میدونه که میخواد کلیساش در بین این دو ظهور یا دو اپیفانی چگونه باشن در زمان حاضر این متن حیرت انگیز به ما میگه که ما باید با پاکی خدا شناسی و پارسایی زندگی کنید پولوس به ما میگه که وقتی خدا در ظهور اولیه مسیح نجات را برای ما به ارمغان آورد ما رو باز خرید کرد چون که میخواست که ما رو برای خودش تقدیس کنه و ما رو قوم برگزیده خودش بکنه که برای انجام کارهای خوب غیور باشن کلمه برگزیده که پولس در اینجا به کار برده به معنی تنها کسی هست که شبیه او هست یادم میاد مردی در شلوغ. با دو علامت بالا و پایین میرفت. یکی از ها در جله او و دیگری در پشتش قرار داشتند. وقتی که او نزدیک میشد، شما میتونستید ببینید که در تابلو مقابل او نوشته شده: من ابلهی برای مسیح هستم. بعد از اینکه او از کنارتون رد میشد، شما میتونستید در لوحه پشتش بخونید: شما ابله کی هستید. ما میتونیم تونیم به او ساندویچ خداوند بگیم. ساندویچی بین دو لوحه. معلوم بود که او میخواست پیغامی بده. من دیوانه مسیحم شما دیوانه یکی هستیم. پولس به ما میگه که ما ساندویچی بین دو ظهور خدا در مسیح هستیم وقتی خدا ظاهر شد که نجات رو به بیاره و وقتی که ظاهر خواهد شد تا به همه چیز پایان بده کلیسا طراحی شده تا قوم برگزیده خدا باشه پولس از ما نمیخواد که ما هایی به گردنمون بندازیم که بگیم ما پیروان مسیح هستیم و یا چیزی مثل اون برگزیده مورد نظر او از این نظر برگزیده هست که مانند الماس کمیاب هست. فقط یکی شبیه او هست. من تابلوی دارم که بسیار ارزشمنده. اون ارزشمنده به این لحاظ که فقط یکی از اون وجود داره. منظور پروس از کلمه برگزیده در اینجا دقیقا همین معنی هست. منظورش این بود که ما باید قوم ای باشیم که او میخواست برای خودش باز خرید کنه. تقدیس کنه و به کار بگیره. ما باید قوم بسیار خاصی باشیم که بتونیم شبیه او باشیم. شاید حالا فهمیدید که چرا گفتم بهترین نام برای نامه پولس به تیتوس میتونه کلیسای بین دو ظهور باشه. حالا که اون رو فهمیدید، میخوام با دادن و عنوان بهتری به این رساله شبانی بحث رو خاتمه بدم. و اون اینه: کلیسای سه ظهور. در بین اولین ظهور مسیح وقتی که نجات حاصل شد و ظهوری که قرار هست در بازگشت مسیح انجام بشه، جلوه ای از خدا توسط من و شما هست که قوم برگزیده او هستیم. در تدارک حاکمانه خدا او سه اپیفانی راهی کرده. خدا من و شما رو برای کار خودش انتخاب کرده. یوحنا پانزده رو به خاطر دارید. شما میتونید تنها عیسایی باشید که همسایتون تا حالا دیده. ما باید سفیران او باشیم. باید تجلی او باشیم. ما باید برای این دنیا عیسی باشیم. ما قوم خاص هستیم. تاکید پولس در نامش به تیتوس این هست که قوم برگزیده که کلیسا از اونها تشکیل شده باید فلسفه مسیح را با زندگی های مقدس و خدا ظاهر کنن. تاکید این هست. خدا ظاهر شده، خدا ظاهر خواهد شد و خدا میخواد که هر روزه در تمام طول روز توسط زندگی های من و شما که قوم برگزیده هستیم ظاهر بشه. این ظهور کنونی خدا توسط کلیساش را میتوان این گونه توصیب کرد. ما با کارهایی که انجام میدیم و حرفهایی که میزنیم هر روز یک باب انجیل می نویسیم. مردم چیزی رو که ما می نویسیم می خونند. خواه بدون ایمان یا حقیقتاً می گویند که انجیل بر اساس زندگی شما چیه؟ مردم چیزی رو که ما می نویسیم می خونند. آیا حقیقتاً وقتی مردم شما رو می خونند آیا مردم حقیقتا میگویند که انجیل بر اساس زندگی شما چیه این انجیلی هست که توسط کلیسای سئپیپانی موعظه میشه بدین معنی که ظهور خدا نه تنها در مسیح بود زمانی که با نجات آمد و نه تنها زمانی که خواهد آمد بلکه از طریق ظهورش به دنیا توسط قوم برگزیدهش من و شما ظهور سوم چالش نامه پولس به تیتوس هست. ظهور سوم چیزی هست که خداوند ما وقتی گفت ما مانند شهری هستیم که بر روی تپه بنا شده و نمی شود آن را مخفی کرد، به تصویر کشید. عیسی به وضوح نمودار ظهور سوم را زمانی ترسیم کرد که گفت: شما مانند چراغی هستید که در چراغدان قرار داده شدید و باید تمام خانه را رو روشن کنید. عیسی وقتی گفت: ما باید بذاریم نور ما چنان بتابه که مردم کارهای نیکوی ما را ببینند. و به پدر آسمانی ما جلال بدن در واقع ظهور سوم رو ترسیم میکرد عیسی وقتی گفت ما و تنها ما نمک این جهان هستیم نمودار ظهور سوم رو رسم میکرد عیسی وقتی در باب 15 انجیل یوحنا میگفت که ما را انتخاب کرده و مقرر کرده که میوه هایی بیاریم که باقی بمونه ظهور سوم رو به تصویر میکشید عیسی وقتی گفت که او تاک است و ما شاخه ها ظهور سوم را به تصویر کشید بدون او ما هیچ کاری نمی‌تونیم بکنیم. عیسی وقتی در باب 15 یوحنا دلایلی رو عنوان کرد که چرا ما باید ثمر بیاریم، در واقع داشت ظهور سوم رو ترسیم می می‌خوام شما را با این فکر تنها بذارم. خدا نقشه بزرگی برای زندگی شما داره چون شما را برگزیده تا بخشی از قوم خاص او و قوم پرسمر او باشید. شاید شما که گوش می‌کنید میدونید که خاص نیستید میدونید که به عیسی مسیح ایمان نیاوردید و به نقشه او برای زندگیتون اعتماد نکردید این را رو به روز دیگری ماکول نکنید امروز روز نجات هست امروز با خدا حرف بزنید و به او بگید که به او به عنوان خداوند و سرور و منجی خودتون اعتماد میکنید و میخواید یکی از افراد قوم خاص او باشید و او رو پیروی کنید عيسى به عنوان خادم به زمین اومد و به عنوان پادشاه به زمین باز خواهد گشت در هر دو مورد اون بینظیر، ارزشمند و عجیبه به غیر از خدا شناسان زندگی کردن چطور میتونیم تصویری از مسیح به دنیا ارائه بدیم زندگی پارسایانه و عجیبی که به دنیا نشون بده ما منتظر بازگشت پربرکت مسیح هستیم متشکریم که در درس امروز با ما همراه بودین. امیدواریم جلسه آینده در مطالعه کتاب فیلیمون بتونید با ما همراه باشید تا برنامه بعدی شما رو به داستان پرمهر خداوند می سپاریم. امیدواریم تشویق شده باشید در جامعه و کلیسای خودتون طوری زندگی کنید که شاهد زنده مسیح باشید، سفیر مسیح بودن مسئولیت و امتیاز بزرگیه.